خدا ما رو مدیون جان بازا نمی رام بسم الله الرحمن الرحیم سبحان جل الله تعالی جل در جنام من نار هر زد بیمار داشته باشید بیمارش خوب میشه سبحانه جای رحیم بابا ساله کریم من وای وای وای وای به کوی ملا بزن دیوای وای چیزی یامچی از مردم فنان کردم اما تو می صبحان جای قدوز سال جای سلام یا یکی زایی که دوماره می دونید دهارو خون نوبت ما میشه شهره دید که رو تو زیر سبحان الجيام مؤمنو صالح جيام هائم الذل من الله يا يومجي یا عزیز تعال ای یا لهم چه بریای مال خودم ده بابتی نگا ای وقتو کردن بعضی آتیش رو نفید که خودش رو یعنی اگه آقامون نگادی نمیتونی اونجا خورشید از پاریک. فقط یه عاشق از آشقا از دردی فرماید یه نوری تو که شاقشونم از نور جلو پاشمو پیدا می کنم چه خبره چه خبره چه خبره؟ سبحان یا خالف او تالک یا بار او, او اجلا من النار یا مجید سبحان یا مصبر او, او ساله ایده یا مقدران تو از وقت صورت قشنگ به من دادی بدم اندازه زدی همه زندگی من همه چی رو من خرام کرد لاغن کاری کن تو شده لیلتون قسمت به همولت آبرون زیجه دهمونا دهمونای ده شبت میان شیفت میشه جلال نال یا مجید شبه ها ساله اینکه یا باقی از من نال یا مادی ای خود تنهایی تنهایی من دارم تنهایی خودم تنهایی بلا خودت گردی کن سبحانه اینکه یا بهابا ساله اینکه یا تبابا اجل الله يا سبحان يا, يا مرشا و حال اگه یا زیدی خدای اما با اصمای دیگه از ایک منعوس نبودم بعد این اصمایت فقط سال هاست من فرمیدم هر وقت کم میارا میگم یا زیدی تا حال که یا مولا از جلال مولانا یا مجید صبح چی؟ اجل نامن انار یا مچی؟ خدا یا جی خودت پناه ندیم بیزارم. شنیدم آتش دم دید دود دل هم زند خیل روایت از در آتیش میزوزونه در آن دوباره همه چیز زنده میشه دوباره میزوزونه تیغمبر گریه میکرد میگم آی مردم وقتی روزه میگیرید یاد تشنگی قیامت کن یک گناهکارا وقتی تو جلبتش نشون میشه به آم بده از دقویم چیزهای دیگه نمیخوام تشبیه کنم روایتشو خودتون حال حالتون بد میشه از منازار در دردیم از دشنگی به اون پناه میبرم میگه تا یه قطرشو میخورن اخ. همه امعا و حشات پایل. میریزه اتباره زنده میشه اونجا مردنی در کار روی از دن نمیره فقط صدا بیاد سوختم مذیرنا آن عالم بزرگ میگه یه روز اومدم خونه بچه می داشتم خیلی زحمتی جو کشیده بودم دیدم بچه من درست قرآن برگشتم گریه می کنه رنگش پریدم تم عزیزم چی که امروز که داده در ببنه بابا امرو معلم به ما سوره رو یاد داد رسیدم به اون جا هم خودم هم بچه دیگه گریه کردن اون چه معلم نفسداری بوده معلم های ما چی خدا به مومنش خیلی دید چه به این آیه معلم شراک ها برای از اقوا بیشه نمی روزی که بچه ها از حیبتش یه نفته پیر می شن بچه ای بیامن روز قیامه از حیبت این آتش یه نفته پیر شد بابا همین که دیدم بچه دیگه قضا نخور مریض جد ککدار آوردم بچه دو روز زنده بود داد و چرا ما نداری وزی بر ما چرا انقدر وای بر سبحان سبحانک یا قدیم آمان. ساله ایجا یا عظیم اجه ناره ناره یا مدیم اعتماد بدون میکنم با گریه سوز من و نفسم احساس میکنم من رو جلد که میگم اجه ناره ناره سبحانک یا قفور سالایت یا جبوب جلال ننمار آجلا من الله را سبحانجا یا باید یا باید اجل یا تو من سبحان بهمه شفقت تا لایچه یا رفیب کن منم من ندارم الله یا یا مونه روایت داره وقتی تو قبرمون میذارن اون جلبان تهلید یه ترم پا تنگها رو میچینن به احساس قریبی میکنه مستقیما خطاب میرسه تنهاد گذاشتن من مونست جار. من رسیق من زیادتون به هم بیشید ترسیدید من خودم الان تو حالا ترسم به خودم اما یه چیزی بگم در خیلی توی کتاب زینب کبرا و فاطمت زهراش می پیغمبر دیگه خیلی زهرا گریه میکنه فرمود فرمود زهراجا قسم به تو و به جلال خدا قیامت به زبون ما لخ می یعنی آماده میشم میرم تو قعر جهنم اگه کسی باشه که محبت حسین تو دلش باشه خودم بیرونش مییارم چهات دم و دکار ای at all. یا نگار آشنا شبه قمن سهن ملا برای به نوچری خود شهات و Oh. حالا بلدی بقیه اچه رو بخونیم زکودکی زکودکی دلم شده اثیر و مبتلایه کن خدا کند که جان درم درام یه بار رو همه بگم به کودکی اصیر و مفتلای خدا کنه <تص> به یاد چرده نمیخوام شهر رو بیان زمان تو اگر من میدم بقیه شو بچه بسازن بگم آخ چنار آخه, چنا... آخه میدونی امشه سهر میخواد ماه بگی من هم میخواد برم دروازه کوفه چنار محملم رسید تر بریگه خودت پناه دادن ها پناه یعنی چیز تا دیدن داریم از گفته آتیش یو حسین فرستاد تو دلت دلت آروم شد حالا بقیه دعا رو دیگه نمی چون مجید پناه داد مجید یعنی کسی که پناه میگه عجر نامنن نار یا مجید سبحانه که یا جلیل و دارنکه جمیل یا سالایت یا تسیرم خیلی قرد و داستیرم ازنان النار یا مجید اجاینا من النار یا مجیب یا مجیب سبحانکه یا معبود سالایجا یا موجود اجاینا من النار یا مجیب سبحانکه یا سوال جایا جواب دو، سوالی جایا معادو، اجلال یا جمال اجل نام نامی آمده سبان که یا شاد بام اجل نام یا مجید اجلنا من النار یا مجید سبحانك يا سمیعو سآلنك يا سریعو اجلنا من النار یا مجید سبحانك يا رفیعو شایل جایب وزیعه ازمه من فعال یعنی کننده یک کاری برای مهمداد بده ای والا مقام متعال از من سالای آلیتا یا تاهر من آلودم یا تاهر از جنال من النار یا مدید سبحانک یا آلم سالای آلیتا حاجم حاکم از جنال من النار یا مدید سبحانک یا دائمان دالن که یا قائم اجر نامنه نار یا مجیبی یا آسمان دالن که قاسم اجر یا مجیبی و خلیلتون قد قسمت روزی رو یار رو پیشو چه گداں امضا مینم زیارت زیارات میرم ازال مریض میشم یا خاص ہے اجنامن یا مجید سوالت چه یا قلیو سالے چه یا مبین اجنامن اللہ یا مجید من فقیری ازم تو بحاله که یا غفی یا ای وفادات تو که من النار مجید. يا مجید که من النار سبحانکه یا مقدم سال اینجا یا محکر من النار یا جل ناشو محکر ده دو تن اجل با اجل نام الاله ريا مجيد يا عجلاء من الله را مجد سبحان که یا باخدا تالن که یا احد عجلاء من الله را مجد سبحان که یا سید تالن که تا یا سمت عجلاء من الله را مجد سبحان چه یا قدیر و تالای چه یا تبیر و عجر نامن نار یا چه یا والی تالای چه یا آزاد، چه و اجل نامن الله یوم جی سبحان چه یا ولیو شان ل چیا مان لو اجل الله سبحان یا او شان ل چیا او اجل سبحانك يا يومعز ترى نجيا يومدلل اجل من النور يا موجي سبحانك يا معز ترى نجيا يومدلل اجل من النور يا موجي سبحانك يا حافظ ترى يا حبيب من سبحانك يا غادرون و مقصدرون عدل من الله رياض مشي يا علم حليم من الله رياض مشي سبحانك يا حكم سالنجا حكيم عدل من النار يا مشي سبحانك يا مجيب ثلایک يا نار اجل نامن النال يا مجيب سبحانك يا ذار رو ثلایک يا نار اجل نامن يا مجيب سبحانك يا سبحان چه یا دلو جانان چه یا فونزلو اجل نو بنان اور یامچی دیگر تو انو سبحان چه یا ربی فو جانان یا شریفو اجل نو بنان اور یامچی سبحان چه یا رب فو جانان یا حکو اجل قالين خيون فقد اجرنا من النار يوم سبحان خيون فانخلون قالين خيون ونجرهم من سولن چیاو بید اجرنا من النور سبحان چیاو مبین کو قولن چیاو اجرنا من سبحان عدل سبحان خون لئی چہ یم مخی اجل نام ان سبحان چہ یم گرد خون لئی چہ یم بغو اجل نام سبحان چہ نور سالاي چه يا منبر سبحانك يا درت و شم سبحانك که نفسي سالاي چه يا من زبان اکیاب زبوره، چاله‌ی دیاب سبز، حجلاب من سبحانك يا محسن صلى يا منشئ من اجلابنا اليوم سبحانك يا سبحان دعالك يا دجال اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا مغيث صلى يا ضياء اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا خاطر قالن چه يا حاضر يا یعنی خدا سبحانك لا علاء الله أني كنت من الظالمين فا ازدجرنا له ونجينا من الغد وكذلك ننجي المؤمنين